از گروه جوان و فرهنگ به نام خدای مهرافرین خالق عفظه و حقیقت سلام که از, از پژوهشگران تاریخ افسانه رو به اصر نوسنگی نسبت میدن به بعضی دیگر پیدایش نخستین افسانه ها رو در قرون میانه میدونن برادران گریم آلمانی نخستین کسانی بودند که در اروپا به شکل گسترده به گردآوری افسانه ها پرداختن و در آغاز قرن 19 کتاب افسانه های خانه کودکان رو منتشر کردن افثانه ای از مردمان سرزمین ویتنام براتون نقل میکنم بنامه افزانی کیسه های طلاق برگرفت از کتاب هدیه کلاغها با ترجمه از عبدالسالح پاک و تنگرغولی یلقی که امیدوارم از شنیدن رسد باید روزی روزگاری در زمانهای خیلی خیلی قدیم دو برادر بودند که با هم زندگی میکردن برادر بزرگتر خسیس بود و تمکار و برادر کوچکتر بخشنده بود و مهربون اونا وقتی پدرشون از دنیا رفت تصمیم گرفتن هر کدوم زندگی مستقل و جداگانه برای خودشون شروع کنند. برادر بزرگتر همه چیزای اون قیمت و خوب رو برای خودش برداشت و به برادر کوچکتر کلبه چوبی پدریشون رو داد. برادر کوچکتر که جوون آروم و بی آزاری بود بدون اینکه اعتراضی بکنه زندگی تازهی رو شروع کرد. و بعد از مدت کوتاهی با دختری فقیر ولی مهربون و نجیب ازدواج کرد و روزگار جدیدی رو در کلبه پدری شروع کرد. برادر کوچکتر هر روز صبح زود به سر زمین عربابش میرفت و حسابی کار میکرد. گایی هم که فرصتی پیدا میکرد میرفت شهر رو باربری میکرد. خلاصه شب و روز زحمت میکشید و با همسرش به خوبی و خوشی زندگی میکرد. برادر کوچکتر در کنار کلبش درختی داشت به نام کارامبولی که میوه خیلی شیرینی داشت و هر ساله میوه زیادی میداد. برای در کوچیکتر وزنش هر سال میباهای درخت کارامبولی رو جمع میکردند و برای فروش به شهر می بله اونا آدم زحمتکشی زحمت کشی که با دست رنگشون شکم خودشون رو سیر میکردند روزی از روزها یعنی درست همون روزهایی که میبه یه درخت کارامبولی کاملا رسیده بودن کلاق بزرگی اومد و روی شاخه درخت نشست و کرد به خوردن میبه یه شیرین و رسیده کارامبولی زن برادر کوچکتر وقتی دید اون کلاق داره زحمت یک سالشون رو برباد میده سعی کرد کلاغ رو از اونجا دور کنه تا آسیبی به میبه ها نرسونه ولی کلاغ نه تنها از جاش تکون نخورد بلکه تونتر شروع به خوردن ها کرد زن که این وضع رو دید با ناراحتی به کلاغ گفت ای کلاغ ما خودمون به اندازه کافی بدبخت و بیچاره ایم شب روز کار میکنیم تا بلکه بتونیم شکممون رو سیر کنیم ولی باز هم نمیتونیم تو چرا میخوای به بدبختی های ما اضافه کنی ها؟ و بعد زن با لحن بغزالودی ادامه داد اگه اگه تو هم میوه های درختمون رو بخوری اون وقت اون وقت ما چیکار کنیم خواهش می خواهش میکنم کنم کاری نکن ما از گرسنگی بمیریم خواهش می کنم که حالا دیگه حسابی سی شده بود از درخت پایین پرید و نوکش رو به خاک مالید و گفت زن ناراحت نباش من به عوض هر دونه میوهی که خوردم یک قطعه طلای تمام ایار به شما میدم. فعلا برو کیسهی به اندازه سه وچب آماده کن تا اون رو برات پر از طلا کنم. زن با خوشحالی و حیجان فریاد زد. تلا؟ تو؟ تو واقعا میخوای به عوض هر دونه میوهی که خوردی به ما یک قطعه تلا بدی؟ تلاق بالهاش رو داد و گفت. البته که بهتون طلا میدم زن با خوشحالی گفت پس پس هرچه دوست داری میوه بخور اصلا تمام میوه ها رو بخور نوش جونت نوش جونت کلا خندید و گفت <تصفيق> <ناس> نه من دیگه سیر شدم حالا بهتره بری کیسه ای رو که گفتم آماده کنی زن که از خوشحالی نمیدونست چیکار کنه به تندی گفت چشم چشم همین الان میرم تو هم به میوه خوردنت ادامه بده بخور هرچی دوست داری میوه بخور به بعد با قدم های شکابون به طرف خونش براه افلا. زن به خونه که رسید با آب و تاب و حیجان زیاد ماجرا رو برای همسرش یعنی همون برادر کچکتر تعریف کرد و تکید کنن گفت مرد من مطمئنم که این کلاغ یک کلاغ معمولی نیست مرد که هنوز در شک و تردید بود گفت شایدم باشه ما از کجا میدونیم ها؟ بهتره برای امتحان اون کلاغ همون کیسه سه وجبی رو که گفته آماده کنیم اینجوری میفهمیم که اون یک کلاق معمولیه یا نه؟ خلاصه اونا کیسه ای رو که کلاق گفته بود آماده کردن و منتظر کلاق بوندن کلاق افثانه ما هر روز پرواز کنن می و روی درخت می و شروع می کرد به خوردن میوه های درخت و موقع رفتن هم داد میزد. در مقابل هر دونه میوه یک قطعه طلا به شما میدم، کیسه ای آماده کنید که اندازش فقط سه وجب باشه فهمیدین سه وجب کلاق این رو میگفت و پرواز کنن همونطوری که اومده بود میره اینکه یه روز وقتی کلاق آخرین میبه درخت رو هم خورد پروبالش رو به هم زد پرواز کرد و درست وسط حیات نشست و بعد با صدای بلند گفت آهای کجا این من برگشتم مرد با صدای کلاق از اتاق بیرون پرید و گفت سلام سلام کلاق جان خوش اومدی کلاق گفت امروز دیگه روزشه برو برو کیسه سواجبیت رو بیار که زودتر بریم مرد با تحجب پرسید بریم؟ کجا؟ کلاق گفت پیش طلاها مگه تلا نمیخوای ها؟ مرد با خوشحالی گفت البته چرا چرا طلا میخوام ولی ولی چجوری بریم کلاق جواب داد پشت من سوار شد من توی چشم هم زدن تو رو پیش طلاها میبرم مرد فوری پشت کلاق ها سوار شد و کلاق به پرواز دارد مرد و کلاغ پرواز پروازکنان رفتند و رفتند از صحراها گذشتند از کوهها گذشتند از ها گذشتند تا اینکه به دریای بزرگی رسیدند اونا باز هم به راهشون ادامه دادند و در وسط دریای بیکران توی یک جزیره زیبا بر زمین نشستند مرد با تجب به اطراف جزیره نگاه کرد و از اونچه که میدید شوکه شد اونجا اونجا تمام جزیره همه جای جزیره پر بود از تلا و جواهراد مرد که از خوشحالی و ناباوری زبونش بند اومده بود به کلا و اه اه این این همه طلا و جواهر مالی کیه؟ کلا خوندید و گفت <تصفيق> بهتر این حرفا کیست رو پر از طلا و جواهر کنید و بعد اضافه کرد هر قدر که میخوای بردار مرد با خوشحالی تون تون گیسش رو پر از تلاو و جواهر کرد و به کلاق گفت کلاق جان من کارم تموم شد برگردیم کلاق گفت اگه دوست داری میتونی بازم تلاو و جواهر برداری هر قدر که بخوای مرد گفت نه نه نه نه نه کلاق جان نه همی که برداشم برای یه عمرم بسته زیادیشون هم چی کار ها؟ کلاغ از قناعت مرد خوشش اومده بود سری تکون داد و گفت آفرین آفرین بر قناعت و کمالی تو. بیا بیا پشت من سوار شو تا تو رو به خونت برگردونم و چند دهز بعد مرد و کلاغ پرواز کنن راه رو در حشت. افسانه ما که حالا یه شبه ثروتمند شده بود دیگه غمین نداشت این زمین خرید چند تا درخت تازه کارامبولی کاشت و خلاصه حسابی و خوب شد و به قول معروف سر و گرفت اونا روزای خوبی داشتن و بالاخره یه روز مرد به زنش گفت آخه زن حالا که الحمدلله وضع زندگیمون روبراش شده بهتر نیست برادر بزرگم رو با زنش به خونمون دعوت کنیم؟ میخوام به اونا بگم که گذشته گذشته بیاین توی صلح و صفا زندگی کنیم زن که مهربون بود و خوشغل با خوشحالی گفت ها فکر خوبیه دنیا و مال و ثروت ارزش این حرفا رو نداره که آدم با برادرش اونم برادر بزرگترش رفت آمد نکنه خیلی خوبه باشو پاشا همین الان برو و اونا رو به خونهمون دعوت کن. مرد هم بلند شد و رفت به طرف خونه ی برادر بزرگترش و اونا رو به خونش دعوت کرد. زن برادر بزرگتر وقتی از دعوت برادر شوهرش باخه شد همسرش رو به گوشه ی کشوند و آرون گفت من گوش کن من هیچ وقت پام رو توی خونه اونا نمیذارم. ما اینجا آبرو داریم. ها؟ چجوری باشیم بریم تو خونه ای که فقر و نداری از چهار ستونش میباره نه نه نه من امکان نداره برم شوهرشم گفت راستش منم از فقر و نداری برادر کوچیکم شرم دارم اونا واقعا پیچارم ولی آخه چجوری به برادرم بگم که دوست ندارم بیام خوند ها چجوری زن فکری کرد و گفت آها ام. بهترین راه اینه که برای رفتن به خونشون شرط بذاریم یه شرط محال مرد با کنجکاوی پرسید شرط محال چه شرطی زن جواب داد ما میگیم به شرطی به خونه‌تون میاین که از قصر ما تا خونه کوچیک شما قاولی بزرگ و ابریشمی پنگ کنی مرد با خوشحالی و هیجان زده گفت آه، حجب شرط جالبی زن محاله که اونا بتونن حتی یه گلیم و حسیر هم پنگ کنن واقعا واقعا که فکرت خوب کار میکنه زن آفرین زن با هیجان گفت صبر کن صبر کن حالا شد دیدی میگیم باید برای خونتون یه دری از طلا درست کنیم اون وقت با کمال میل به خونتون میای. مرد خندهی کرد و گفت از این بهتر دیگه نمیشه زن به بعد رفت و به برادر کوچیک ترش گفت ای برادر جان ما به شرطی به خونت میاییم که از در قصر ما تا در کلبتون قالی بزرگ و ابریشمی پنگ کنی و برای خونتون دری از طلا درست کنی در این صورت که ما با کمال میل تو رو میپذیریم و به خونت میاییم برادر کوچکتر کمی مکس کرد و گفت باش ما فردا منتظرتون هستیم و بعد از برادر بزرگ خداحافظی کرد و رفت برادر کوچیکتر و زنش خودشون رو برای اومدن مهمانشون که همون برادر بزرگتر و زنش بود آماده کردند. اونا قالی بزرگی تیه کردن و اونطوری که برادرش گفته بود از جلوی خونه اونتا تا خونه خودشون پهنگ کردن و در خونشون رو هم آب طلا دادن و طلایی کردن حالا بشنوید از اون طرف برادر بزرگتر و زنیش که فکر نمی برادر کوچکتر بتونه غالی بزرگ رو تحیید کنه و خیال راحت تو خونهش نشسته بودن. اما دیدن که قالی پنج شد و آماده است. تعجب کردن. تصمیم گرفتن به خونه یه برادر کوچکتر برن و توی قضیه رو در بیارن. برادر بزرگ و زنش وقتی به خونه‌ی برادر کوچیک رسیدن با دیدن خونه‌ی بزرگ و قصر مانند اونها حیرت کردن و راز اون رو از برادر کوچیک‌تر پرسیدن برادر کوچیکتر که ساده بود و مهربون تمام ماجرا رو از الف تا یه برای اونها تعریف کرد برادر بزرگ وقتی دید که بردر کوچیکش ثروتمند شده و به مال و ثروت زیادی رسیده حسابتش گل کرد و خواست هر طوری شده خودشم به اون کلاق دست پیدا کنه بنابراین خونه و تمام چیزهای گرون قیمتش رو به بردر کوچیکش داد و در عوض خونه و درخت کرامبولی رو از اون گرفت و بازنش رفت اونجا و بی سبرانه برای اومدن کلاق لحظه شماری میکرد فردای اون روز کلاغ پرواز کنان اومد و رفت روی درخت نشست و شروع کرد به خوردن میواهای درخت کارامبولی برادر بزرگ که منتظر همین لحظه بود رفت زیر درخت و رو به کلاغ کرد و گفت آه, آه چقدر من بدبخت و بیچارم آه ندارم که با نال سودا کنم اینم شد زندگی کلاغ <تصفيق> وقتی این حرفا رو شنید رو کرد به برادر بزرگتر گفت در عوض هر دونه میوت یه قطعه طلای تمام ایار به تو میدم تو برو و کیسهای به اندازه سه وجب درست کن و فردا منتظرم باش برادر بزرگتر با خوشحالی گفت چشم چشم کلاق مهربون چشم حالا هرچی داری از این میوه های خوشمزه و آبدار بخور نوش جونه به بعد به سراغ همسرش رفت و با خوشحالی گفت ثروتمند شدیم زن ثروتمند؟ زود باش زود باش زود باش کیسه رو آماده کن که ما هم خوشبخت شدیم خلاص اونو به عوض یک کیسه سی وجو یک چهار کیسه بزرگ آماده کردن و منتظر موندن فردای اون روز کلاغ اومد و برادر بزرگ رو سوار خودش کرد و اون رو به همون جزیره زیبا و پر از طلا و جواهر برد برادر بزرگ وقتی اون همه طلا و جواهر رو یکجا دید از تعجب چشاش گرد شد و هوش از سرش پرید و تا جایی که میتونست کیسه ها رو پر از طلا و جواهر کرد انقدر ریخته بود که بلند کردنشون کار هرکسی نبود کلاق با دقت به برادر بزرگتر نگاه میکرد و میخندید برادر بزرگ وقتی کیسه ها رو پر از تلاو و جواهر کرد تمام جیبهاش رو هم پر کرد اما باز دلش راضی نشد پاچه شلوارش رو بس و از طلا پر کرد، آستین پیراهنش رو هم پر از طلا کرد. خلاصه هر کجا که شما فکرش رو میکنین و فکر اون آدم قد میداد ریخت و آخر سر به کلاق گفت: « کلاغ جان، من آمادم برگردیم. کلاغ برادر بزرگتر رو با تمام بارش سوار کرد و به پرواز درمه. ولی مگه میشد با اون همه طلا و جواهرات پرواز کرد کلاق هرچی تلاش کرد و شاید بتونه از روی دریا بگذره نشد که نشد نه نمیشه یه لحظه از بال زدن باز بال نزدن همون همونو سرنگون شدنشون همون برادر بزرگ با تمام کیسهای طلا و جواهرات به وسط دریا افتاد و با همه اونها به ته دریا رفت م. بل و این عاقبت زیادخواهی و تمکاریه هنوز که هنوزه سیادها گاهی مرواریدهای اون پیدا میکنن و به خوشبختی میزن افثانی کیسه های طلا رو از مردمان سرزمین ویتنام براتون نقل بر برگرفت از کتاب هدیه کلاقها با ترجمه از عبدالسالح پاک و تنقرقلی یلقی در ظاهر ساده افسانه‌ها جهانی پیچیده از پیامها و راز و رمز ها است ما باید از این پیام ها درس بگیریم و اونا رو در زندگی به بندیم هزار افسون کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار سید فریبرز نوربخش اجرا مهران دوستی صداوردار اکبر نیکاین. ایکننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بگو